فصل دوازده هم. برخی شبها فریادی کزیم را از خواب بیدار می کرد کمک! دوز! بگیریدشان! از بالای شاخه ها به شتاب خود را به جایی می رساند که فریاد از آنجا می آمد گاه میشد شد که خانه دوز زده از آن خورد زمینداری تنگ دست باشد خانواده دهقان بی نیم نیمه برهنه بیرون ستاده بودند و به سر و سینه خود میگفتند بدبخ شدیم، بیچاره شدیم، جوانی خلنگ آمد و همه درآمد امثالمان را برد. مردم جمع میشدند. جوانی خلنگ؟ مطمئنید که خودش بود؟ دیدیدش؟ بله که خودش بود، نقاب داشت، یک تفنگ داشت به این بزرگی. دو نقاب داره دیگر همراهش بودند، اما سرکردهشان او بود. کجا رفت؟ از کدام طرف در رفت؟ یعنی میخواهید دنبالش بروید و بگیریدش؟ خدا میداند الان کجاست؟ گاهی دیگر رهگذری بود که اسب و کیف پول و بالا و بار و را برده و او را میان جاده رها کرده بودند کمک؟ دوست، جوانی خلنگ چطور شد؟ تعریف کنید ببینیم؟ یک بار از آنجا، از توی تاریکی پرید بیرون، ریش داشت. تفنگش رو گرفته بود جلو، نزدیک بود از ترس بمیرم. برو دنبالش، از کدام طرف رفت؟ از این نه، شاید هم از آن ور، نمیدانم. مثل باد میرفت. رفت. کزیما بران شده بود که جوانی خلنگ را پیدا کند. سراسر جنگل را در می در کمین پرندگان مینشست و خرگوش ها را دنبال می کرد. سگش را به جست و جو می داشت. بگرد. اپتیموس ماکسیموس بگرد. اما آنچه وسوسهش می کرد یافتن جوانی خلنگ بود. نه برای اینکه به او چیزی بگوید یا کاری با او داشته باشد. تنها برای اینکه شخصیتی آنچنان مشهور را از نزدیک ببیند. اما هنوز نتوانسته بود او را پیدا کند. هرچند که چندین شب را تا صبح جستجو و کرده بود. با خود می گفت شاید امشب بیرون نیامده. اما در بامداد چشمش به گروه هایی می افتاد که در این سو یا آن سوی دره در سر پیچ راهی یا کنار رودخانه ای جمع شده بودند و درباره باره دزدی گفتگو می کردند. به دو خود را به آنجا می رسند و گوش می خوابند. یک بار کسی رو به او کرد و گفت ببینم! تو که همش بالای درخت های جنگلی، تا حالا جوانی خلنگ را ندیده ای؟ کزیمو از خجالت آب شد. منومن من کنان گفت نه، نه، گمان نکنم. کس دیگری گفت مگر میشود جوانی خلنگ را دید. مخفیگاه دارد که هیچ کس نمیتواند پیدایش کند. از راه هایی میرود که به عقل هیچ کس نمیرسد. می گفت با جایزه‌ای که برای سرش تعیین کرده‌اند کسی که او را پیدا کند می‌تواند تا آخر عمر بخورد و بخوابد بله اما همه کسانی که جای او را میدانند، خودشان هم باید حساب پس بدهند و اگر آفتابی بشوند سر خودشان هم بالای دار است وانگهی آیا واقعا همه این جنایت ها کار جوانی خلنگ است خدا نکند گیر بیفته. چون با این همه اتعام هایی که به او میزنند، حتی اگر بتواند در چندین مورد بیگناهی خودش را ثابت کند باز موردی هست که بشود به خاطر آن دارش زد در سراسر جنگل های کنار راه کرده در جوانی حتی سر سردسته خودش را هم کشته حتی دوست های دیگر هم تردش کردند برای همین آمد و طرف ما پناه گرفته همیشه همین طور بوده. ماها زیادی خوبیم. کازیما به سراغ مسگرها می رفت و درباره تک تک این خبرها با آنان گفتگو می کرد. در میان خانوارهایی که در جنگل میزیستند، زیستند، گروه های مشکوکی بودند که دوره می گشتند. روزها به خانه های مردم میرفتند. برایشان مسگری میکردند یا صندلی هایشان را از کاه می باشند یا خرت و پرتشان را جمع میکردند. اما کار اصلیشان این بود که خانه ها را برای دستی شبانه شناسایی کنند در واقع بسیاری از آن کارگاه های درون جنگل انبار چیزهای دزدی شده بود میدانید دیشب جوانی خلنگ به یک کالسکی حمله کرده جدی میگویید البته هیچ چیز بعید نیست میگویند در همان حال تاخت دهنه اصبها را گرفته و نگهشان داشته نه پس این کار او نیست مگر اینکه به جای اسب کالسکه را به موش بسته بوده باشند منظورتان چیست میخواهید بگویید که جوانی خلنگ نبوده چرا چرا این حرفها چیست که به این جوان میزنی چرا بابا خود جوانی خلنگ بوده مگر نه اینکه هر کاری از دستش برمیآید <تصفيق> کوزیمو که میشنید با چونین لحنی درباره آن راهزن سرشناس گفتگو می کنند گیج میشد و نمیدانست چه بگوید از آنجا میرفت تا به گفته های گروه دیگری از جنگل نشینان گوش دهد ببینم، به نظر شما دزدی دیشب کار جوانی خلنگ بوده نه هر دزدی که موفق از آب در بیاید میگویند کار او بوده مگر نمیدانستی؟ چرا فقط موقعی که موفق از آب در بیاید چون که اگر ناموفق باشد می توانی مطمئن باشی که کار اوست. <تصفيق> چه آدم ساده لوی. <تصفيق> سردر نمی آورد. یعنی جوانی خلنگ آدم ساده است. با این پرسش دیگران به یک بار لحن خود را عوض می کردند. نه بابا نه دزد سنگ است که همه ازش می ترسند. شما او را دیده اما هیچ کس تا حال او را ندیده مطمئنید که همچه کسی اصلا وجود دارد؟ این هم از آن حرف بله که وجود دارد اما حتی اگر وجود هم نداشت اگر وجود نداشت؟ چه فرقی می کرد؟ <تصفيق> ولی همه می گوین... اما باید گفت که همه دوزدی ها و آدمکشی که می شود کار جوانی سنگدل است. وای به حال کسی که در این باره شک کند تو پسر جرأت کنی در این باره شک کنی کوزیمو به این نتیجه رسید که هرچه از در دور میشدی و در جنگل پیش میرفتی، ترسی که در نشینان از جوانی خلنگ داشتند اندک اندک جای خود را به شک و ناباوری و حتی ریشخند میداد. از آنجا که مردمان آگاه هیچ اعتنایی به آن راه زن نداشتند شوق کوزیمو به دیدن نیز؟ فروکش کرد. آنگاه بود که او را دید. بعد از ظهر بود. کوزیمو بالای درخت گردوی نشسته بود و کتاب میخواند از چندی پیش کتاب برایش چیزی ضروری شده بود. سراسر روز را تفنگ به دست به انتظار شکاری گذراندن سرانجام آدمی را خسته میکند. باری نشسته بود و ژیل بلاسه لساش را می‌خاند. کتاب را به دستی و تفنگش را به دست دیگر گرفته بود. اپتیموس ماکسیموس که کتاب خواندن صاحبش را دوست نمی داشت، پایین پای او میپلکید و میکوشید به وسیله توجه او را به سوی خود بکشاند. مثلا با دیدن پروانی پارس میکرد با این امید که کوزیمو دست به تفنگ ببرد. ناگهان مرد ریشوی ژنده پوشی در سراشیب راه کوهستانی پدیدار شد. نفس نفس میزد سلاحی نداشت. پشت سرش دو پاسبان شمشیر به دست میدویدند و فریاد میزدند. بگیریدش جوانی خلنگ است این دفعه گیرش انداختیم مرد راهزن از دنبال کنندگانش جلو افتاده بود اما دو دل میدوید و حالت کسی را داشت که میترسد راه اشتباهی را در پیش گیرد و به دام افتد و اگر به همین گونه میدوید پاسبان ها به زودی به او رسیدند. درخت گردویی که کوزیمو روی آن بود شاخه‌های بلندی داشت که دست به آن نمی رسید. اما کوزیمو مانند همیشه ریسمانی همراه داشت که برای گذر از جاهای دشوار به کار می برد. ریسمان را پایین انداخت و یک سر آن را به شاخه‌ای گره زد راهزن با دیدن ریسمان که درست جلو چشمش به زمین افتاد لحظه دودل ماند سپس آن را به دست گرفت و با چابکی بالا رفت از آن آدم‌های دل چलाक یا اگر دلتان بخواهد چالاک دو دل بود که به نظر می رسد هیچگاه توانایی بهرهگیری از لحظه مناسب را ندارند. با این همه هرگز آن را از دست نمی دهند. هنگامی که پاسبانها از راه رسیدند، ریسمان بالا کشیده شده بود و جوانی خلنگ در لابلای شاخه های گردو کنار کزیمو نشسته بود. در آن نقطه، راه به دو بخش می شد. پاسبان ها هر کدام به راهی رفتند. و پس از اندکی دوباره به هم رسیدند و دیگر نمیدانستند چه کنند به اپتیموس ماکسیموس برخوردند که پرسه میزد و دم تکان میداد یکی از پاسبانها به دیگری گفت ببینم این صد مال همان پسر باران نیست که بالای درخت ها زندگی می کند اگر این طرف ها باشد میتوانیم از او بپرسیم که چیزی دیده یا نه؟ کزی فریاد زد من اینجا هم. دیگر بالای گردو نبود شتاب خود را به درخت شاهبلوتی در روبه روی آن رسانده بود. پاسبان ها در جا روبه او کردند و دیگر نگاهی به درختان دیگر نینداختند. سلام ارباب. جوانی خلنگ راهزن را این طرف ها ندیدید؟ کزیمو گفت. مرد قدکوتاهی را دیدم که میدوید و نفهمیدم کی بود. اگر منظورتان همان است از طرف رودخانه رفت. قدکوتاه؟ چنان جسه ای دارد که آدم وحشت می‌کند. چه میدانم؟ از این بالا همه به نظر کوچک میرسند خیلی متشکریم ارباب و به سوی رودخانه رفتند کوزیمو به درخت گردو برگشت و سرگرم خواندن ژیل بلاس شد جوانی خلنگ همچنان به شاخه چسبیده بود رنگ به چهره نداشت مو و ریش انبوه حجولی به راستی به بوته خلنگی میمانست و همان رنگ سرخ و همان پرپشتی را داشت تکه های از برگ خشک و پوسته بلوط و سوزن کاج لابلای مو و ریشش دیده میشد با چشمان سبز از همگوشوده سرگشتش کزیمو رو ورانداز می کرد. راستی که بد قیافه بود. سرانجام پرسید. رفتند؟ کزیمو به نرمی گفت. بله، بله. شما همان جوانی خلنگ را زنید؟ مر از کجا می شه همینطوری. خیلی چیزها در بارتان میگویند شما شما هم همان پسری هستید که میگویند هیچ وقت از خاص درختها پایین نمیآید؟ اهه، شما از کجا می دانید؟ من هم همینطوری خیلی چیزها در بارتان میگویند با حالتی احترام آمیز یکدیگر را نگاه میکردند مانند دو شخصیت سرشناسی که اتفاقی به هم برخورده و خوشحال باشند از اینکه هر کدام دیگری را میشناسند که دیگر چیزی برای گفتن نداشت دوباره سرگرم کتاب خواندن شد. چه کتابی می خوانید؟ ژیل بلاس؟ خوب است؟ بد نیست؟ خیلی مانده تمامش کنید؟ بی صفحه مانده چطور مگر؟ مرد راهزن خجولانه خندید و گفت: <تصفيق> « میخواستم خواهش کنم که اگر تمامش کردید، بدهید من هم بخوانمش. میدانید من همه روز را در گوشه مخفی می نمیدانم چطور خودم را سرگرم کنم یک بار به یک کالسکه زدم که چندان چیزی تویش نبود اما یک کتاب بود که برداشتم و به مخفیگاه بردم حاضر بودم همه ی آنچه را که زده بودم بدهم و آن کتاب را برای خودم نگه دارم شب که شد فانوس را روشن کردم و به سراغ کتاب رفتم اما به زبان لاتین بود یک کلمش را هم نمیفهمیدم. سری تکان داد. میدانید، هیچ چیز از لاتین سرم نمی شود کوزیمو گفت لاتین خیلی سخت است اینکه دارم می به فرانسه است بیان که متوجه شود لحن آموزگارانهی به خود گرفته بود جوانی خلنگ گفت زبان فرانسه را خوب بلدم همینطور زبان توسکانی و کاستیلی را حتی یک کمی کاتالان هم بلدم نیم ساعت بعد کوزیمو کتاب را به پایان رساند و جوانی خرنگ آن را با خود برد. بدین گونه رابطه برادرم با آن راه زن آغاز شد. جوانی خرنگ همین که کتابی را به پایان می برد آن را پس میآورد کتاب دیگری میگرفت و به دو به نهانگاهش میرفت و سرگرم خواندن میشد. کتاب ها را من از کتابخانه پدرمان بر می داشتم و برای کوزیمو می بردم مدت زمانی که کتابها پیش او می ماند، هرچه درازتر میشد. هنگامی که آنها را پس میگرفتم، جلد بیشترشان پر از خراش و لکه های خزه و آب دهانه هلزون بود. خدا میداند جوانی آنها را کجا پنهان میکرد. برادرم و او در روزهای معینی بالای درختی قرار میگذاشتند. کتابها را با هم مبادله میکردند و بیدرنگ از هم جدا میشدند. زیرا پاسبان‌ها پیاپی در جنگل می‌گشتند و همان کتاب دادن و گرفتن هم بسیار خطرناک بود. برادرم چگونه می‌توانست دوستی خود را با آن بزهکار توجیه کند؟ اما جوانی خلنگ چنان دچاره آتش خواندن شده بود که هر روز کتاب تازه‌ای می‌خواست. از آنجا که سراسر روز را پنهان بود، کتاب درشتی را که یک هفته وقت برادرم را می‌گرفت، او یک روزه می‌خ دیگر آرام نداشت. به هر بهایی بود، باید کتاب تازه ای می میگرفت. اگر روز دیدارشان نبود، سراسر ناحیه را برای یافتن کزیم و زیر پا میگذاشت، به گونه ای که آبادی های را دچار وحشت میکرد و همه نیروهای انتظامی امبروزا برای گرفتنش بسیج میشدند. زودی کار به جایی رسید که دیگر کتاب هایی که من برای کزیم و می میبردم نمی توانست آتش او را فرونشان باید منبع دیگری پیدا می کردند. با یهودی کتاب فروشی به نام اربک آشنا شد که به او کتاب چند جلدی میداد. داد. از بالای شاخهی خود را به پنجره خانه او می و بر آن می کوبید و در برابر کتاب هایی که می گرفت به او خرگوشی یا تیهوی میداد. از همه شگفتتر اینکه جوانی خلنگ سلیقه ویژه خودش را داشت و هر کتابی را نمی خاند. اگر کتابی را که به او داده شده بود نمیپسندید، همان فردان را پس می آورد تا با کتاب دیگری عوض کند. برادرم به سنی رسیده بود که رفته رفته به نوشته های سنگین تر علاقه پیدا می کرد، ولی باز باید مراقب می بود. زیرا یک بار جوانی خلنگ کتاب ماجراهای تلماک را پس آورده و به او هشدار داده بود که اگر بار دیگر چنان کتاب ملالاوری به او بدهد، درخت را زیر پایش اره خواهد کرد. کوزیمو به این فکر افتاد که کتاب‌ها را به دو بخش کند. یکی آنهایی که می‌خواست خودش با خیال آسوده بخواند و دیگری آنهایی که باید به راه زن می‌داد. اما نشد. مجبور بود این دسته از کتاب‌ها را نیز بخواند. زیرا جوانی خلنگ روز به روز سختگیرتر و بی‌اعتمادتر می‌شد. پیش از گرفتن هر کتابی، از کوزیمو می‌خواست تا موضوع آن را برایش بگوید. وای اگر از آن خوشش نمیاد. یک بار برادرم یک رمان سبک عاشقانه به او داد. فردای آن روز جوانی خشبین از راه رسید که فکر می کنی با یک زن نازنازی طرفی نمی شد پیشبینی کرد که چگونه کتابی را می خلاص خلاصه این که کار اصلی کزیمو شد و برخلاف گذشته که سرگرمی گذرایی بود سراسر روز برادرم را از آن خود کرد. کوزیمو از بس کتاب‌های گوناگون را بررسی و سبک و سنگین و مقایسه می‌کرد تا هم برای جوانی خرنگ و هم برای فرو نشاندن نیاز روزافزون خودش انتخاب کند آنچنان شیفته ادبیات و به طور کلی دانش بشری شد که همه روز نیز برایش بس نبود از این رو شب هنگام نیز در روشنایی فانوس کتاب میخواند روزی از روزها با رمان‌های ریچاردسون آشنا شد جوانی خلنگ هم از آنها خوشش آمد. هنوز یکی را به پایان نبرده، یکی دیگر میخواست. اوربک چندین دوره از کتاب‌های او را به کوزیمو داد که برای دست کم یک ماه جوانی بس بود. کوزیمو آسوده شد و به خواندن زندگی‌های پلوتارک پرداخت. در این حال جوانی خلنگ از بام تا شام در بستر خود لمیده بود و می‌خاند و می‌خاند و می‌خاند. موهای ژولیدش پر از خس و خاشاک پیشانیش چین برمی‌داشت چشمان سبزش از بسیاری خواندن سرخ شده بود یه گاه نوک انگشتش را با آب دهان خیس می‌کرد تا ورقی بزند همگان با هر واژه‌ای که زیر لب میخواند آروارش بی‌تابانه تکان می‌خورد با خواندن کتاب‌های ریچاردسون گرایشی که از دیرباز در جرفای روان جوانی نهفته بود به وسوسه او پرداخت گرایش به برخورداری از یک زندگی بنجار خانه و خانواده و خویشاوند مهر خانوادگی و نیکوکاری گرایش به گریز از مردمان بد و تبهکار دیگر هیچ علاقهی به آنچه در پیرامونش بود نداشت و از آن دلزده بود تنها برای این از نهانگاهش بیرون می‌آمد که به شتاب خود را به کوزیمو برساند و کتاب تازی از او بگیرد به ویژه هنگامی که داستانی چند جلدی بود و باید جلد بعدی را از او می‌گرفت. از آنجا که بدین گونه در لاک خود فرو رفته بود به موج نفرتی که دیگران رفته رفته از او به دل میگرفتند، پی نمیبرد. حتی جنگل نشینان، یعنی همدستان پیشین او بسیار خشمگین بودند از اینکه راهزنی چون او بیکار افتاده بود و همه ی نیروهای انتظامی به سراغ آنان میرفتند. در گذشته ها همه ی کسانی که به گونهای با قانون درگیر بودند، از سفیدگران دور گردی که گهگاه چیزکی می تا ت کارانی که چون خود جوانی خلنگ راه زنی میکردند پیرامون او گرد آمده بودند حتی کسانی هم که با او هم دست نبودند به گونه از کارهای او بهره می گرفتند. جنگل پر از کالاهای دزدی یا قاچاق بود که از خرید و فروش آنها چیزی نصیب هرکس میشد. کسانی هم که به حساب خودشان دست به دزدی و ماجراجیی میزدند برای ترساندن مردم و گرفتن هرچه بیشتر از دارایی آنان از نام او استفاده می کردند. سراسر ناهی دست خوش بیم و حراس بود. مردم با دیدن هر بی سر و پایی او را جوانی خلنگ یا یکی از همدستانش می پنداشتند و به هیچ و سر سرکیسه را شل می کردند. اما این دوره خوش به سر رسیده بود. دیگر جوانی خلنگ به چه درد می سراسر روز را در گوشه می میلمید و با چشمان پر اشک کتاب می‌خواد. دست به هیچ کاری نمیزد و دیگر از کالاهای دزدی خبری نبود. کار همه کساد شده بود و پاسبانها هر روز به جستجوی او به جنگل می‌آمدند و هر آدم مشکوکی را بازرسی و بازجویی میکردند. از همه اینها گذشته با جایزه بسیار کلانی که برای یافتن او تعیین شده بود، میشد گفت که پایان کار او چندان دور نیست. دو راهزن جوان که از شاگردان جوانی خلنگ بودند و یارای از دست دادن پیشوای غرورآفرینی آفرینی چون او را نداشتند بران شدند که او را به بازگشت به زندگی افتخارآمیزش برانگیزند این دو او و لوریو خوشگله بودند که در کودکی ولگردی می کردند و در نوجوانی به راهزنی رسیده بودند. روزی از روزها با هم به سراغ جوانی خلنگ رفتند. جوانی در نهانگاهش روی بستری از کاه دراز کشیده بود و کتاب می‌خوند. بی آنکه سر بلند کند پرسید: چه شده؟ چه خبر است؟ آمده این پیشنهادی به تو بکنیم. آم؟ چه پیشنهادی؟ همچنان کتابش را می‌خوند. میدانی خانه کاستانتکاج است؟ همانی که مأمور اداری عوارض نمک است. میدانم. چرا؟ آن؟ عوارض نمک؟ دو راهزن جوان نگاهی گرفته به یکدیگر انداختند تا زمانی که جوانی آن کتاب لعنتی را در دست داشت چیزی از گفته هایشان در نمی نمیافت یک دقیقه آن کتاب را ببند و به ما گوش بده جوانی خلنگ به زانو نشست کتاب را با هر دو دست گرفت و آن را به سینه فشرد انگار نمیخواست صفحه ای را که در حال خواندنش بود گم کند اما چونان اشتیاقی به خواندن داشت که در همان حال نیز کتاب را به گونه بالا گرفت که بتواند آن را بخواند فکری به سر اوگو گنده زد. انکبوت درشتی در آن نزدیکی تار تنیده بود. اوگو دست خود را دراز کرد و انکبوت و تارش را پایین کشید و آن را به سوی چهره جوانی خلنگ پرتاب کرد. جوانی بی به چنان روزی افتاده بود که حتی از انکبوت می ترسید. هنگامی که پاهای حشره و رشته های چسبان تارش را روی چهره خود حس کرد بی اختیار فریادی کشید و کتاب را به زمین انداخت. و هر دو دست خود را به چهره و چشمان پف کرد و دهان خیسش کشید. اوگو خود را به زمین انداخت و پیش از آنکه جوانی پایش را روی کتاب بگذارد، آن را برداشت. جوانی خلنگ میکوشید با دستی انکبوتا تارش را از چهره خود بزاداید و با دست دیگر کتاب را از اوگو گنده بگیرد. کتابم را بده! اوگو کتاب را پشت خود پنهان کرد و گفت نه! اول باید به ما گوش بدهی داشتم کلاریس هارلو را میخندم درست به نقطه اوجش رسیده بودم بدهش به من باید به ما گوش بدهی امشب یه گونی هیزام میبریم به خانه کاستانته. تو را به جای هیزام میکنیم توی گونی شب که شد از گونی بیرون میایی و میخوام داستان کلاریس را دمام کنم چهره خود را از تارنگ حبود پاک کرده بود و داشت با دو جوان درگیر میشد گوشکان، شب که شد از گونی بیرون میایی و همه ی را که کستانته این هفته جمع کرده از او میخواهی، پولها را توی صندوخچهی پایین تخت خوابش میگذارد. دستگم بگذارید، این فصل را تمام خواهش می کنم. خواهش میکنم. دو جوان به یاد زمانی افتادند که اگر کسی جرأت مخالفت با جوانی خلنگ را به خود میداد، او بیدرنگ هر دو تپانچهش را میکشید و به شکم مخالف میچسبند. دلهایشان آکنده از حسرت آن زمان شد. به پافشاری گفتند: کیسه های پول را ازش میگیری؟ فهمیدی؟ پول را که برای ما آوردی میتوانی کتاب را پس بگیری و هر چقدر دلت خواست بخوانی. قبول؟ امشب میای؟ نه، نیستم. من نمی نمیایم. ها؟ نمیای؟ نمیای. خیره حس نگاه کن او گوگنده برگی از ته کتاب را به دست گرفت جوانی خلنگ فریاد زد نه آن را پاره کرد نه پاره نکرد. سپس آن را مچاله کرد و به آتش انداخت ای دوله سگ چرا این کار را کردی؟ دیگر نمیتوانم بفهمم کتاب چطور تمام میشود؟ به دنبال او تا کتاب را از دستش بگیرد. خب، امشب به خانه کستانته میروی نه، نمی رویم. اوگو دو برگ دیگر از کتاب بی بیشرف، کلاریس را پاره نکن، نه. پس می روی. من... اوگو گنده سه برگ دیگر از کتاب را با آتش انداخت. جوانی خلنگ نشست و سر را دو دست گرفت. گفت باشد می روم. اما باید قول بدهید که امان دم در خانه او کتاب را به من پس بدهی. جوانی را در گونی کردند و سر آن را با نخی بستند. لوریو خوشگله گونی را به دوش گرفت. او گوگنده پشت سر او می رفت و کتاب را در دست داشت. از مشتل لگدی که گهگاه به گونی می زدند و از قرشی که از درون آن به گوش می رسید. چون این برمی آمد که جوانی پشیمان شده است و نمیخواهد کار را انجام دهد از این رو او گوگانده برگ دیگری از کتاب را میکند و جوانی با شنیدن صدای آن آرام میشد با این وسیله او را به خانه مأمور دریافت عوارز نمک بردند و آنجا رها کردند خودشان در همان نزدیکی ها پشت درخت زیتونی پنهان شدند و منتظر ماندند تا جوانی با پول بیاید ولی جوانی شتاب کرد و هنگامی از گونی بیرون آمد که هنوز شب نشده بود و کسانی در خانه می و میرفتند فریاد زد دست بالا ولی خودش خودش را نمی شناخت انگار خودش را از دور نگاه می کرد به نظرش می رسید که حالتی مسخره دارد گفتم دستا بالا همه بروید توی آن اتاق رو به دیوار بیستید آه درست است خودش هم آن بازی را باور نداشت. توتیوار چیزهایی میگفت گفت هر چه زودتر آن قضیه به پایان برسد. همهتان هستید؟ دکترکی گریخت و او نفهمید. در این گونه کارها هر لحظه ارزش اساسی دارد. اما او بیهود وقت میگذراند کستانت خود را به نفهم زده بود. کلید صندوقچه‌ را پیدا نمی کرد جوانی خلنگ دریافت که دیگر کسی او را جدی نمی گیرد و در ته دلش خوشحال شد. با این همه، سرانجام با دست های از ی پول از خانه بیرون آمد و کورکورانه به سوی درخت زیتون دوید. این هم پول ها، حالا را به من بدهید. چهار، هفت، ده دست از پس درخت بیرون آمد و او را گرفت. از شانه تا گوزک را به زنجیر کشیدند. دسته بزرگی از پاسبان ها او را چون جنبون نخپیچیده‌ای بلند کردند و به دوش گرفتند و برد. کلاریس در پاسگاه منتظر است و او را به زندان انداختند زندان بالای برجی بر فراز دریا بود انبوهی از کاجهای بلند ساحلی آن را در میان داشت کزیما از بالای یکی از این درختان خود را به نزدیکی جوانی خلنگ رساند و او را دید که سرش را به میله های پنجره چسبانده بود راهزن زندانی باکی از بازجویی ها و محاکمه نداشت می دانست که در هر حال به ویخته خواهد شد. آنچه چه رنجش میداد: آن روزهای پوچ و توهی بود که باید بی کتاب و نیز آن رمانی که تنها نیمی از آن را خوانده بود. خوزی توانست نسخه دیگری از کلاریس را بیابد و آن را بالای کاج برد. به کجا رسیده بودی؟ به آنجایی که کلاریس از اشرتکده فرار میکند. کزیما چند لحظه کتاب را ورق زد. آها، پیدایش کردم. خب، گوش بده. رو به پنجری نشست که دستهای جوانی خلنگ میله های آن را گرفته بود و به خاندن پرداخت. بازجویی به درازا کشید. راهزن در برابر شلاق پایداری می چندین روز میگذشت تا به یکی از جرم های بیشماری که کرده بود اعتراف کند. هر روز پیش و پس از بازجویی کوزیمو برایش کتاب میخاند. با پایان گرفتن کلاریس کوزیمو حس کرد که او تا اندازهی غمگین شد. پیش خود گفت که خواندن کتاب ریچاردسون برای کسی که در بنده است و کاری نمیتواند بکند باید اندوهزا باشد. بهتر دید رومانی از فیلدینگ را بخواند که ماجراهای پرهای جانش میتوانست تا اندازهی بی جنبشی درون زندان را جبران کند هنگامی که دادگاه برپاشد، همه ی فکر جوانی خلنگ به دنبال ماجراهای جاناتان وایلد بود. روز اعدام فرارسید و رمان هنوز به پایان نرسیده بود. واپس سفری که جوانی خلنگ در زندگیش می کرد، با عرابه و همراهی کشیش بود. در اون محکومان به مرگ را از شاخه بلوط بلندی در وسط میدان بزرگ شهر می آویختن. مردم به تماشا دور درخت گرد می آمدند. در لحظه ای که تنابه دار را به گردن جوانی خلنگ میانداختند، آوای سوتی از میان شاخه ها شنیده شد. جوانی سر بلند کرد. کزیمو بالای درخت بود و کتاب را در دست داشت. بگو ببینم آخرش چه می شود؟ کزیمو در پاسخ گفت، متأسفم جوانی، جاناتان را به دار می زنند. یعنی همان کاری که با من میکنند پس خدا خداحافظ لگدی به نردبان زد و آن را انداخت و ریسمان خفش کرد هنگامی که تنه بدار آویخته از جنبش ایستاد مردم پراکنده شدند کوزیمو همچنان روی همان ای که ریسمان از آن آویخته بود نشسته ماند و هر بار که کلاغی به جنازه نزدیک میشد تا به چشمان یا بینی او نک بزند کزیما کلا هش راتکان می داد و آن را می تارند.